اما درس بعدی که مرتبط با درس قبلی هست به خاطر این گفته دو یعنی قسمت دوم مضاف المضافو یا المتکلم ک مضافی که بیای متکلم مضاف باشه هر مضافی در مثلا غلام و ضد مضاف بیای متکلم نیست مضاف به هست ولی اگر بگیم غلامی مضافه به هست بیا متکلم منظور این از زمانی که مضاف ما مضاف به یا باشه به منظور زمانی که مضاف الیه چه باشه یاء متکلم باشه ال امثله شنو از آورده قمت بنصیبی من العمل در جملوته آورده بنصیبی یعنی اینکه اینجا دو تا حکم رو به ما میخواد دیگه یکی اینکه که حکم مضاف دومی حکم خود یا در امثله گروه اول میگوید زمانی که کلمهای سالم باشه و مضاف بیاید متکلم باشه خود مضاف دیگه کسره نمیگیرد کسرهش تقدیری هست کسره چه ببینید اگر نصیب مجبور بشه ما بهشت میدیم میگیم علم نصیبی و زمانی که مجرور بشه ولی مضاف بیا متکلم بشه دیگه ایش تمام کلمات صحیح مفرد این حالاتو دارن کتابی نصیبی دکتری کهتره نمیگیره. کهترشون تقدیری هست یکی از کلماتی که اعرابش تقدیری هست مضاقه بیا متکلم هست خب این یارو چه حرکتی ما می تونیم دقت یارو رو یا رو ده حرکت بدیم. یه تا کنیدش یا ما می تونیم قمتو بنصیبی من العمل و می تونیم قمتو من العمل. چی؟ داریم میون هرچندش در یکی مصاحبه روی چی؟ این ببینید دقت کنید. زمانی که کلمات کلمات بعضی از کلمات در قاعده اینکه امروز توضیح ندیم تکراری نشه ما اون جدول قدیمی آید. در در امثله گروه دوم آورده ما میتونیم یارو ساکن ببینید و میتونیم در امثله گروه اول یارو ببینید فعه ببینید قم تو بنسیبی من الاوال او بنسیبیا سما تو بی بآدابی او بی آدابیا احتفوا عل الفقیر بسدقاتی او بسدقاتیا دیدید یارو هم در امثله گروه اول ساکن داده و هم اینا دو تا جایزه در قرآن اتفاقا اومده ها نه باردن باردن او جنبه نه هیا نه هیا خود کلمه جدا گرنه هیا یا متکلم متکلمه چیه خود کامله یک کلمه یا هیا یک کلمه از نسیبی دوتا یا یا مبنی بر هست بنده خودا مبنی کجایی میگن مبنی بر فتح یه اصلا از نیست بحث ما با بحث ما خیلی فرق داره. زمین ها اعرابشون متفاقه بچی میگن زمین ها مبنی هست بعضی مبنی بر فتح بعضی مبنی بر کسر هست بعضی مبنی بر سکون هست مبنی بر فتح است. دیگه نمیتونیم این اعرابشون ایشت ثابت بیاد تو بحث خودمون بیان اما گروه همسلی دوگون رو دقیق لجمیلتون این عصایه لجمیلتون خب عصایه دیگه نمیتونیم بگیم این نمیتونیم ساکن چرا؟ چون مقصوره اگر اسم مقصور مضاف بیان و فکر یا فتح مگیره در اومده عليها در که حالت چی بحث نصوی اینجا منظور بنده خودم اضافه الیه ما در بحث اضافه این تو کجا رفتی؟ عزیز من بحث نیست یا یا رو داریم بحث میکنیم یا اضافه الیه منظور یا مضر پس خلاص شد رفت دیگه بحث اون رو یا هست اون اصای بند خدا اصای اینا دو تکلن میشه اصا اطنه این نیان و ضافنه خ... لجمیلتون خبرشه خب بیایید اینجا یه لحظه دیگه با اون قایده هم با اون قاعده هم مجرورش میکنن اون قاعده تکی مجرورش میکنن با هم اون اعرابش میشه چی چرا تکی با هم کسی کی الان میگن اولا بر اساس اون قاعده با همه حسابشون میکن تکی که باشه یارو مجرور میکنن بیای دینجا یا چه هست اعرابش اعراب یا چه هست استاد عبدالله باقر فکر نبید یا زمیر زمیران مردی هست تو مردی وجود نداره یا بگو مجروره یا منصوب یا مردی یکی اینا رو بگو دیگه چه اعرابی داره تفکو نه عبدالله ب یا یا یا در اسايهت چی نقشی داره چه اعرابی داره الان بله حالا دیگه مضاف الیه بنده خدا امروز یه قاعده میخواد شوار یاد بده اون قاعده این هست میگه اگر اسمی من مقصور مضاف بده یا متکلم شد یا که مبنی است اعرابش ولی چه, چه حرکتی میگیره فقط میگیره مقصور اونایی که آخرشون علیفه علیفه ممدوده نه علیفه مقصوره از ها مقصوره دیگه موسه مقصوره میدانا میده خیلن مثال اول مقصیه دو کانت لیالیه فی سفری مقمه بطن لیالیه چه منقوص هست دوهبین جایی که ما یا متکلم رو فته میدیم یا متکلم رو فته میدیم زمانی هست که اسم منقوسی متکلم مضاف شود خود یا رو دیگه نمیتونیم ساکن بدیم باید بهش بدیم؟ فته بدیم ولی در امثل گروه اول ما میتونیم ساکنش بدیم میتونیم دیگه چش بدیم فته بدیم. ولی در این امثل نه در این گروه امثله دوم فقط بشتی میدیم پس زمانی که مز... اسم منقو... مقصوری به بیای متکلم مزاف شود دو زمانی که اسم منقوصی به یای متکلم شود سه انتما صاحبای زمانی که مسنعی به یای متکلم چی شود؟ مزاف شود بله بس می بینیم که صاحبایت شده بگه نمیتونیم یا رو ساکن بیدیم هاولای ها یا و سبومین جایی که یا میگیرد زمانی که جمع مذکری بیایی متکلم مضاف شود اما در مورد اعراب خود مضاف یا رو توضیح داریم مفصل در قاعده هم کنیم خود یا بعضی جاها اعرابیش خود مضاف زمانی که کلماتی مضاف بیای متکلمشون در بعضی حالات اعرابشون تقدیری هست و در بعضی حالت اعرابشون ظاهری هست حالا در قوائد میگوید بیایید روی قوائد القاعده اذا اضیف الاسم بعدس بعد از قاعده سوالت مفرمشه شاید در قاعده جوابش اومد اذا اضیف الاسم الیاء المتکلم زمانی که مضاف شود اسم بیای متکلم زمانی که مضاف شود اسم به چی؟ آخر را لمناسبه لی مناسبت الیا اون اسم اون مضاف آخرش کسره داده می شود خاطر مناسبت بایا رأی تو قلمی که آخرین حرفت چش دادی؟ کسرش دادی؟ و جاز فلیائی الاسکان و اون حرکت مضافی حالا در مورد یا داره توسیم دیگه میگه جائز هست در یا ساکن دادن و دیگه چی؟ فتح دادن الا مگر مگر همون چارجایی که در قائد گفتیم الا اذا کان مقصور مگر زمانی که اون کلمهی که بیا مضاف شده مقصور باشه مانند اسایه. او منقوصا یا که اسمی که مضافبیا هست منقوص باشد مانند لیالیه او موسنه یا موسنه باشد مانند صاحبای. او جمع مذکر سالم یا جمع مذکر سالم باشد مانند منقذیه او مقردیه هم آیا اونا منو خارج میکنن پیامبر گفت؟ مقرضی یا یا را, را, را. شید آره؟ آه؟ شما میری در کتابه لگا کنی دینی یا چه آره؟ آن قصانگیری یو اون چیزی دیگه است، اون یا متکلم نیست، اونجا اون مثالو اولا اون، یای متکلم به معنی منه بند خدا اگر اون یای متکلم اصابه کنیم سامری میشه سامری من اون چیزی ببینید فعلا نرید تو ما فعلا بحثیم اونیای چه نه شما بحث ما برادر من بحث ما یای متکلم فعلا میمونید اینجا نه طبعا بحث نکنید بعدا من میشه در کجا کجا خب بگو همون سوالی که مربوط به درس نیست ولی مطرحش چی؟ اون فائل بنده خدا فائل مرفوع یا نیست خب از گرفته دیگه آخر عزیز من اون یا زمیر نیست که مبلی باشه که کجا که داری مورایی رو با یه مبنی داری قاطی میکنی <تص همان> من دارم میتنیم اون هر نقشی داشته باشه همون حرکت میگیره اون فائل مرگوه پس من مگیرفت دیگه اون <تص> خودش از خودش حرکت داره اعراب داره بیا اینجا آخه فائل مگه چه اعرابی داره بنده خدا؟ مدارو، نیو نه؟ تویی پایلو؟ خوال عمرو، خوال عمرو، اگر در فاون ساکن کجا بندو کنیو کنیو کجای آریزی بیتون رو سا ساکن بیتون؟ سامری، سامری، قایل سامری، بیتون؟ خب، تکنیو اذا عضیف الاسم فیجب آخر المضاف واجب ببینید یک قاعده رو داره میگه واجب هست ساکن دادن آخر مضاف در تمام این امثله در تمام این امثله گفته بود واجب هست که چه داده شود ساکن وفات یا وفتسو یا داده شود چه حرکتی داده شود ایرابایا محلل مجموعه حرکت فقط میگیره حرکتی لفزیش وگرنه مثل موقعی که میگیم اینا یا میگیم مضافل ایلی محلل مجموعه ولی چه حرکتی میگیره اللہ حضر ظاهری یای متکلل زمانی که به این چند گزینه مضافل ایلیش این چند گزینه مضافل شد بسندش فرکه میگیره کامل مفصل توضیحات رد شدند پس این یا متکلم اگر یه جایی دیدید فتح داشت یا ساکن داشت تعجب نکنید در همین قاعده هست صاحب دارید؟ نه هیچیز دیگه. پس این احکاماتی بودند در مورد کلمه که مضاف بیا متکلم بشه و حرکاتی که خود یا میگیرد اما در خیلی که در رابطه با